کتاب افسانه های مغرب زمین نوشته این کارودت ترجمه رضا احمدی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسان صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سما مهربان، این داستان سلطانی که عاشق پول بود یکی بود یکی نبود در کشوری سلطانی زندگی می کرد که خیلی خسیص بود اون شبها خوابش نمی برد می ترسید که دزدها پول و جواهراتش رو بدزدن. به همین خاطر پول و جواهراتش رو در بالاترین طبقه ساختمون پنهان کرده بود دختر سلطان هم نزدیک همون اتاق زندگی میکرد. سلطان خیلی دوست داشت به زیارت مکه بره. اما وقتی از مشاوران خودش میپرسید که این سفر چقدر برای اون هزینه داره اونها میگفتن که این سفر به پول زیادی احتیاج داره. و سلطان هم میگفت نه نه خیلی گرونه اونجا خیلی دوره. من نمیتونم اونجا برم. روزی گدایی به در خونه سلطان اومد و درخواست پول کرد. سلطان گفت: چرا باید به تو پول بدم؟ گدا گفت: میخوام به مکه برم. سلطان گفت: چطور میخوای به مکه بری؟ هزینه سفر به مکه که خیلی زیاده. گدا گفت: نه، برا من خرجی نداره. من یک کیسه نون دارم، یک خر هم دارم. در بین راه هم از مردم پول میگیرم شاه پرسید تو از دوستها نمیترسی گدا که نامش ابراهیم بود گفت نه ابدا من از دزدها نمیترسم اونها چیه منو میتونن بدزدن من که پولی ندارم سلطان گفت کیسه نان و علاقت رو به من بده تا من به مکه برم خودت در خونه من بمون تا من برگردم. ابراهیم در خانه سلطان موند. اون فهمید که سلطان دختری زیبا و پول زیادی داره. اون میدونست که چند وقت دیگه سلطان برخواهد گشت و اون دوباره بایستی در و در به دنبال پول باشه. بنابراین فکری کرد و نزد شاهزاده خانوم رفت و گفت اتفاق وحشتناکی افتاده شخصی به پدرت که در راه مکه است ای نوشته و حرفای زشتی درباره‌ی تو به اون گفته پدرت هم عصبانی شده به سربازاش دستور داده تو رو بکشن همراه من بیا و برای مدتی پنهان شو وقتی پدرت از سفر برگرده خودش میفهمه حرفایی که درباره‌ی تو گفتن دروغه و حقیقت رو متوجه میشه اون وقت میتونی نزد پدرت برگردیم بعد ابراهیم یک کیف پر از جواهر رو برداشت و روی الاق گذاشت و شاهزاده خانم سوار بر اسب شد و اونها را از شهر خارج کرد. وقتی از شهر دور شدند، ابراهیم به شاهزاده خانم گفت از اسب بیاده شد. شاهزاده خانم از اسب پایین اومد. ابراهیم کیسه جواهرات رو پشت الاغ گذاشت و گفت من تو رو اینجا تنها میذارم چون حالا به اندازه کافی ثروت دارم و میتونم با اون به خوبی هر کجا که دلم میخواد زندگی کنم شاهزاده خانم گفت یه از جواهراتت دور زمین افتاده نگاه کن ابراهیم نگاه کرد اما چیزی ندید گفت نمیتونم چیزی رو ببینم شاهزاده خانم گفت اگه سرتو پایین تر بگیری اونو پیدا می ابراهیم سرش رو پایین برد. شاسد خانم سنگی برداشت و به سر ابراهیم زد. ابراهیم بیهوش روی زمین افتاد. شاسد خانم لباسای ابراهیم رو از تنش بیرون آورد و پوشید. خودش رو به شکل مردا در اوورد و کیسه جواهرات رو برداشت و سوار اسب شد و رفت و رفت. او به سرزمینی دیگر رسید. وقتی به شهر رسید و داخل کیسرو دید، ما خودش گفت این جواهرات به چه درد میخوره؟ اینها فقط سنگای رنگین هستند. بعد جواهرات رو فروخت برای خودش یه خونه کوچیک خرید و یه مدرسه ساخت. یه خونه هم برای پیرمردا درست کرد. اون به فقرا هم کمک می‌کرد. به زودی این خبر در همه شهر پیچید و به گوشه شاهزاده جوان اون شهر رسید. شاهزاده جوان که خیلی کنچکاف شده بود با پای خود به نزد شاهزاده خانوم که حالا خودش رو سمیر مینامید رفت. سمیر از اون پرسید تو سلطان این کشوری؟ شاهزاده گفت بله پدرم خیلی پیره و در حقیقت حاکم این کشور منم. سمیر گفت تو فقیر ترین مرد این سرزمینی شاهزاده گفت نه من ثروتمندترین فرد این سرزمینم سمیر گفت نه تو فقیر ترین آدم هستی تمام این کشور کار میکنن و برای خودشون مزد دریافت میکنند اما تو از مردم مالیات میگیری این پول به تو تعلق نداره پس تو از همه فقیر تری گفت به نظر تو باید چی کار کنم؟ سمیر گفت بیا با کمک هم به وضع مردم رسیدگی کنیم. بعد از مدتی شاخصاد نزد مادرش رفت و گفت مادر چشمانم به من میگه که سمیر یه مرده اما قلبم میگه که اون یک زنه چطور میتونم بفهمم که سمیر یه مرده یا یه زن؟ مادرش گفت به او بگو خواهرت رو به عنوان همسر به ازدواج اون درخای اوورد از طرف دیگه قرار بود خواهر شاهزاده رو به همسری شاه پیره کشور همسایه در بنابراین وقتی شاهزاده به خواهرش گفت که آیا حاضر با سمیر عروسی کنه خواهرش خیلی خوشحال شد شاهزاده نزد صمیر رفت و به اون گفت دلم میخواد خواهرم رو به عقد تو در بیارم سمیر گفت اجازه بده اول با اون صحبت کنیم سمیر به خواهر شاهزاده گفت من یه دختر هستم اما خواهر شاهزاده گفت من با تو ازدواج میکنم چرا که در غیر این صورت باید با شاه پیر کشور همسایه ازدواج کنم من به اون علاقه ای ندارم پس اونها به ظاهر با هم عروسی کردن. با این حال شاهزاده دوباره نزد مادرش رفت و گفت چشمام هنوز به من میگن سمیر یه مرده اما قلبم میگه که اون یک زنه. چطور میتونم اینو بفهمم؟ مادرش گفت اگه سمیر یه زن باشه این یه راز و هیچ زنی نمیتونه یک راز رو نزد خودش نگه داره. اگه سمیر زن باشه به زودی رازش رو برات فاش خواهد کرد. هرچند که از اینجا بره. به زودی خدمتکاری از راه رسید و نامهی برای شاهزاده آورد. این نامه نامه سمیر بود. سمیر در نامه خودش نوشته بود که من خواهرت تو رو با خودم میبرم. اون سالمه. من مرد نیستم. زن هستم. پدرم سلطانه و من خواهرت تو رو به کشور خودم میبرم چون که اون نمیخواد با شاه پیر کشور همسایه ازدواج کنه. شاهزاده گفت: من دنبال اونها میرم. از اون طرف سلطان پیر از مکه برگشته بود و هیچ خبری از دخترش نداشت. اون روز و شب به دخترش فکر میکرد و اشک میریخت. تا اینکه یک روز دخترش از راه رسید و اون خیلی خوشحال شد. بعد از چند روز شاهزاده جوان هم به کشور اونها اومد و گفت، قلبم به من گواهی میداد که تو یک زنی، من به تو علاقه مندم، نلم میخواد تمام عمر کنارت باشم. اون وقت هفت شب و هفت روز جشن گرفتند و تمام مردم رو به جشن عروسی خود دعوت کردند. سلطان پیر دست شاهزاده رو گرفت و گفت تو باید به این کشور حکومت کنی. من دلم میخواد مثل یه آدم فقیر زندگی کنم، اینطوری طوری راحت ترم. چون دیگه از دستها نمیترسم شبها با خاطر آسوده میخوابم من میخوام بازم با یک کیسه نون و یک الاغ به سفر مکه برم این درست نیست که آدم فقط به فکر پول باشه و مردم را فراموش کنه سلطان پیر باز راهی سفر شد و شاهزاده و شاهزاده خانم هم سالها به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند و به مردم کشورشون خدمت رسانی کردند دوستان عزیز امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید تا داستان دیگر بدرود کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران نشانی وبلاگ ما m دی ال او جی اف ای <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی